بحث آجه به مسئله اجماع بود در کلمات از خواب برای اینکه که در اینه بحث کاملا روشن بشه مقداری از کلمات بزرگان احل سنت رو راجع به این جهاز میخونیم که به تعبیر برمانه شیخ همال اصل الله و حوال اصل الله اصول که در باره این کلماتی که در این جهت نقل شده عادتاً بنای ما اینه که اون کلمات سطح اول و تراز بالا رو بخونیم نه کلمات پیش و پا افتادی که گفتم نسبتاً خب بدون شک ازداری در میان اهل سنت داره مقام و مخصوصاً که این کتاب رو هم بعد از اون کتاب دیگرش در اصول نوشته از کنم که شافعیه دیگر بزرگان شافعیه هست در صفحه 173 جلد اول این چاپی که با این هاشیه داره ایشون متعرض مسئله اجماع شدن البته که مقدمه ها راجع به اینکه اصولا اجماع چیه محقق میشه نمیشه این مقداری این صحبت های و شبیه یک مذهبی رو هم که ما داریم بعضی از علمای ما گفتن آره اونام از اینا گرفتن هنوز هم برای من روشن نیست از بعضی از معتزله نحقل شده نظام ازش نحقل شده که اجما است که ازش انسان بطونه حجت شرعی در بیاره میخواد عدد باشه میخواد نباشه این رو شبیه ما هم داریم از و اصول ما هم این اینشون اینجا نحقل میکنه و الا ان الاجماع عبارات عن كل قوم آمد قامت حجته و امكان قول واحده این در عبارات اصولین متاخر شیعه هم اومده مثلا عبارات شهید اول شهید که اگر از اقوالی ما قول امام رو کش بکنیم این اجماع اگرچه اتفاق کل نباشه و البته خاص دیگه الان این اجماع یک نفره برای از این رو ما یک رفتی فکر میکردیم که مثلا به خاطر کاشفیت است که بعضی از علمای ما قائلندیم چون اینم لکیف بود گفتن اینجا از عبارتی ایشون بخونیم ایشون نقل میکنه بعد بله. بله. بعد ایشون میگه و هو خلاف لغت و علا ارژ بهش اجماع نمیگن یک نفر لیکن نهو سواق علا منحبی این رو روی مذهب خودش درستش کرده ازلم یه چون به نظر او اجماع حجیت نداره اضافه قول یک نفر هم طبق قاعده باشه حجیت بسیار در شیعه این مصلت نهر شده با معنی که اگر ممکن از قول یک نفر هم کش و قول امام بکنیم لیکن ایشون از باب حجیت خود اون قول وارد شده از شد که در کتب اهل سنت راجع به حجیت اجماع وجوه مختلفی رو دارن البته در این کتاب غزالی وجوه رو سه تا کرده کتاب و روایات و عقل به اصطلاح خودش سه مسلح کرده در عده از کتاب مثلا چهار تا پنج و تا مسلح نمیستم لیکن مثلا دو مسلحش آیات کتابه این روشیشان دقیقه تره اون وقت تمسک به کتابتی کردن و به قوضالی که قولوش و جهلناکم و که داره که جهلناکم امتن وسطال تکونو شهده علم ناز و قول اتالا کن تو خیر مت نغخ و جسل تعمرون تمرون وول معرووع از هم و قول اووتالا و من, من خلقنا اون متون یدون ول حق و به این و قول اووتالا و ارترس مو و حمل الله جمعن ولا من همه آاط خون چون کاملا واضحه کی هیچ کدوم از این آات در بر مطلب این ها نداره خودشون هم میدونن این مطلب غااضه میخوام بگم که این همه حات رو جمع کرده و بحث کردن نتیجه واضحی نده و قول او تا حالا مطلفتون من شیء ان ف حک الله و مفهوم او ان متفقتون فی و حق بود. این محطلف اگر اینطور شد من تفقم این حالا چه مفهومی بون اینا برفرزن چی مفهوم باشه مثل مفهوم لقد و قول و از و به انتنناظتون فیشه این فرادوه الله و رسول مفهومه اینت تفختون فا هو حق باون. خب اینت تفختون چون قبلش داره الله و افیال رسول یعنی وقتی بازه خب اگر در کلام خدا و رسول اختلافی شد نه اینکه خودتون در قبال قرآن رسول ند بله فهادهی درد خودش واضحه به نظر ما ما تعجب میکنیم از اینها چرا سر فعام ماخره که فقط ماهات و اصول حرفایه و اساس میتونیم بعدشون که فاضح... فاضحی کلها زواهر لا تنسو علال ترس این دلالتی نداره بازه. برای ما از ما اولشان واضح این تصریح خود جناب غزالی برنا تدل و ایزن دلالت از زواهر حتی ظهور هم نداره چرا سه به نمس اثر توی مسئله اجماع و اجماع فقها و در یک ضرب این آیات چرا وقتی مثلا این مطلب در یک مبلای وجودا ولی و لذا گفت ب لا تدل ایذن دلالت از زواهر من هم در شده مثلا که دیگه چون همین فقه در اینجا و شروحی که خیلی مفصل که این آیات و اردو و استدلال و اشکار و انقیض این همین عبارت این حجت الاسلامشون دیگه حجت استادی نمیخوام خیلی شما رو معطل بکنم و اقواها راسته اونی که خیلی اهل سنت روش کار کردن و خیلی هم اصرار دارن این آیه است و من یوشاق رسول این آیه در سوره نسا آیه 115 شخصی به نام ابن عبیره این به اصلا مشرک میشه از مکه فرار میکنم بیره. مکه بعدا زداره میره به مشرکی میشه است و محترم میشه بعدا میتوز کنم به روم اونجا این آیه در اون در شنه هم میگن نازه چون و من یوشا مستر تا فعل باب مزا... مفاعله هست و من, من یشاقر شاقر رسول یعنی باب مفاعله من ساورت عرض کردم که در لغت عرب چند بار تو همین درز اصول و فقر در لغت عرب وقتی یک معنای اسمی هست او رو به باب های سلازی مزید دیدن برای اشتغاق از اون خود شبه یعنی فاصله الان در لحظه عرب رو با آپارتمان میگن خانه که از هم جزا جزاست شب و شبقه معنی فاصله فاصلهی که افتاده میشه و معنی یو یعنی معنی یو جد شبقه بطه بینه و بینه رسول کسی که فاصله بین خودش و بین پیغم برد در لحظه عرب من سابقا از کردم این معانی محبول رو از معانی محسوس خیلی راحت میگه مثلا وشتنه با قول از زور خود اجتنه یعنی شما در یک جهت باشین قول زور در جانب دیگه وجنوبی و بنی نعبود اسنام. خدا کاری بکنید من و فرزندانم اسنام رو مجانبت بکنید جدا بشین یعنی اسنام و عبادت اسلام یک طرف بشن من و فرزندانم یک طرف این یک طرف یک جانب و یک جانب از شهر درسته اجتنه بود یعنی انسان یک جهت باشه اون فعله دیگه یک جهاز دیگه باشه این کنایه از هرمته کنایه از این که انسان انجام نده من یوشاغرم همین شد من یوشاغر رسول یعنی من جعل بینه و بین رسول چقدم کسی که بین خودش رو بین فیغمبر فاصله بندازه من بعد ما تبینه لغول خدا بعد از این که هدایت برش روشن شد که این شخص بود و یتبه، این یتبع رو به جهاز می بخونید اطفرست بر یو شاقر. غیر سبیل المؤمنین نوولیهی ما تولا ما پشت این ولیه چیزی که پشت سر یک شهر میاد بدون فاصل در وقت عرب ولی میدن ببینید یک چیزی که پشت سرش باشه فاصلی نشه یعنی این عمل رو انجام داد بلا فاصله اون آثاری که برای عمل او هست و رو بار میشه نوولیهی ما پشت سر او قرار میدین ما این جزار رو او میدیم و نوصلیهی جهنم یعنی هم در دنیا این مشکلاتی که برای مشاقه با و هم نصره جهنم او رو به اصلا می سوزانیم سلام یعنی خود صلاح هم فی آماده وعنای لینیست که برای اثر حرارت سلاح نام یعنی گرمای آتش به و ساعت مسیرا این آیه مبارک محل استشهاد این آیون بین آیه مبارکی اینه که یتب غیرست اینه مؤمنیم کسی که یه غیر سبیل المؤمنین این به جهنم میاد. پس من یه سبیل المؤمنین بهش میگم. این تمام استدلالشونه. اینه یه تابع غیر سبیل المؤمنین، ون کی ازش تمام این مثل این میمونه که اگر به کسی بگه این کذبته، او اگر تبتعهدن، تلاشی جهنم مثلا ف میشن ف اینکه یعنی اگر دروغ گفتی این فسق میاره قیبت هم کردی فسق میاره این میگنه اینجا اینطوره خب این خیلی واضحه افتداعا در این مثالی که ما زدیم او و او اوردین گفتیم او. این ظاهرش اینه که اون جذا بر هر دو اینجا واوه نه او و یک تب غیر طبیر مؤمنین نگو من و شاغق رسول او یک تب غیر طبیر مؤمنین بعدشم منيع و رسول من بعد ما تبيين له بعد از اینکه هدایت و فهمید از پیغمبر جدا شد دقت بکنید این چه ربطی داره به اون مثالی که ما زد البته بزرگان اهل سنت حتی متکلمین بزرگشون امثال قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی که در جلد 20مشم مطرح این بحث شده در حجج اجماع مرحوم سید مرزا در اشرافی رد مفصلی بر ایشان داره متاسفانه اکثر روز این روزگاری کتاب خوب تحریر و چاپ نشده یعنی خدا رحمت بکنه که چاپ بسادم خوری بود خب خطی بود در حد یک به اصطلاح ما ها منبری در حد اهل علمه خیلی سید مرزا این کتاب اشرافی سید مرزا که امتیازش اینه که از جلد 20 الی مخنه کردن چاپ شده 20 جلدش جنده بیستشو آورده و رد کرده خیلی واقعا سید مرزا محکم به قول مروح شده اینجا غلط اینکه که این مسئله یه که با آیه مبارکه در سطح بالاست یعنی بزرگان عمه اهل سنت، بین این آیه تمسوک کردن البته مرحوم سید مرزا جواب داده که در این جوابها نیست در خود کتاب المحصول فخرازی شاید سه چهار راجب این راجبین آیه بحث کرده. فلسفه اصلاش قبول نمی‌کنه بهرازه این مهمترین که اینه و یک طب غیر خبیر المؤمنین و اصلا سید مرتضی جواب خیلی لطیفی داده که میگم چون کتاب بچاپ شده ما حقیقتی کتاب نداریم سید مرتضی میگه الا اگر بود چون هل هست در بیاریم میشد مفهوم گرفت اما غیر خبیر المؤمنین این مفهوم لغت مفهوم نداره خیلی کلمات لطیفی داره درم حتما می‌خاست بیارم بخونم و قوم ذیح بدن چون بچاپ شده و واضح نیست که انکه ایشون طول میکشه، آقای خودشون مراجعه کنه، گیر کرده ماده توضیح میدن در از سید مرتضی میگه فرق میکنه بین به که بگه و یت طب الا شبیل المؤمنین. اینجا مفهوم داره. اما غیر که آمده مفهوم نداره. خیلی لطیف، کلام بسیار لطیفی داره، این رو ارجاع داده به مفهوم لقب. شبیه همین بحثی که ان خواهد آمد تو آیه نون اینجا اکن فاستهون بنوئن مرحوم میرزا ناینی و عدی میگن اگر وصف معتمد بر موصوف نباشه این مفهوم وصف نیست مفهوم لغزه اگر گفت راجلون فاسق این مفهوم وصف اما گفت اینجا اکن فاسقان این مفهوم لغزه یعنی اصلا مفهوم وصف نیست بحثی لطیفی داره مرحوم سرنظم همین نکته رو من خیلی اشاره صحبت کردم اینا میگن که سخت تفسیر و تفسیریه انصافا خیلی لطیف گفت خدا رحمتش کنه خیلی رشنگ برده اینجا رو ایشون یک غیر سبیل المؤمنین و معنای یک طبع لا سبیل المؤمنین نیست غیر رو محکوم لقب گرفت. بل و این نداله که یوجب اتباع سبیل المؤمنین چون خود قزداری بزرگان اهل سنته و از اهمه شنه و ها ما تمسته که به شافعی امامشم هست شافعی یعنی این مسئله دقت کرده از همون قرن دوم هم بزرگان رعی مثل شافعی بینتمستو کنن و وقت اطنب نافی کتاب تحضیب اصول فی توجیح الاسئل علال آیه و دفعها. این اسئله مرادش مثل اشکالات اشکالاتی که شده بر آیه مرادش از اسئله اشکالات و دفع اونها حالا با این کیشون خودش هم شافعی مثلکه و شافعی امامشه میگه و الگی نراه از خیلی از دهستان در این دفت هایی کتاباشونه کردم ولدی نراح می کنم ولدی چون مخواد فعل رو به خدا نسبت بده اگر نراه یعنی من می بینم اگر نراح یعنی خدا به من نشون داده ولدی نراح انال آیه لی سد نستن فلقره خونه قزانی قبول نمی کنه انال آیه لی سد نستن فلقره بله ظاهر انال مرادبه ها ان من الرسول. این مشاقه رو معنی قتال گرفته لیکن نیست مشاقه یعنی جعل بینه و بین رسول الله و رسول الله شبه کرد مشاقه این اصلا مثل شافره من فلب بس به سفر این نیست یقاتلیش یقاتل گرفت من یقاتل رسول و یشاقهی و یتب غیر سبیل المؤمنین و راه مؤمنین رو پیروی نکنه فی مشایعته و نصرته و دفع الاعلاء اعداءه نول له ما تولا فکانه یعنی به عبارتم اخرى به عبارتم اخرى در اینجا روب نیست راب اگر راب شد ظاهرش عفه یعنی که انما کسی به جهنم میره که نه فقط با رسول الله جدا میشه از جامعه اسلامی هم جدا میشه مراز اینه من یو شاقه رسول این واب رو با عطف بیاریم وقت من بعد ما تا... کسی که راه راست درش روشن شده منزاله که از رسول جدا میشه و از, را... از جامعه اسلامی هم چون این چهست ابن عبیره هم مخالفت رسول الله کرد هم از مدینه رفت مکه این شد و یک طبع غیر صبیل المؤمنین یعنی جامعه اسلامی رو کرد این مفهومش این نیست کسی که یو رسول یک دو کسی که یک طبع غیر صبیل المؤمنین این دوتا استحقاق جهنم برند دوتا مراد نیست یکیه ما همه بر المراد بها انمنی و قاتل رسول و یو شاققی و یکتبه غیر سبیل المؤمنی فی مشایعتیهی و نصرتیهی و زفله اداهن نوولیهی ما حوالله فکه بویا گویا خداون لم یکتبه به ترک المشاقه فقط نگفت مشاقه بده حتی تنوام الیه مطابعت و سبیل المسلمی فی نصرتی حالا ایشون سبیل المسلمین فی نصرتی گرفته ما هم حق رو اجمالا بهشون میدیم، به جای این کلمه ایشون بودیم خروج از جامعه اسلامی به قطعه ایشون گفت سدیل المؤمنین فی نصردی من معتقدم که معنی که میگم با معنی ایشون فرق میکنه من به اصلای قول روزه ترجمه آزاد کردیم به جای پس بنابراین اینطور میشه کسی که با رسول الله مخالفت بکنه و از جامعه اسلامی هم جدا بشه روشن بله، <تصفيق> ولادت به آن، ولی انقلاب لحظی ما یه مر و حالا هو را صبر ال فع. این صبر هم نیست که ما میشکنیم و سرقت یکیه. ما این میگفم، ظهور آیون وای، یعنی به ابراز اخره آیون وای که ظاهری در غاب وام زاد در جمعه یعنی فقط اتباع هایی نیست که ما میگیم نه. اتباع غیر سبیل مومنین به اضافه مشاقت رسول بله چه ان لم یکون ظاهرا بر فرض هم ظاهر نشه فقط محتملو حالا اینم یک راهی به قول ما تقدیری لذا اینجوری می‌خوام بگم ولو فرض سر اگر فرض کردیم روایت بر فرض کنیم یک روایتی از رسول الله بیاد آیه که شما مفتی معنا کنیم. آیه روایت رد می‌کنین میگه نه ولو فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم ال آیه که لا بله ولم یا جعل ذاله که رفعنده نست نمیگن آره شما مخالفه با آیه صحبت کردید اینو با ارمان تفسیر قبول میکنه. کمال چی اگه اگر مثلا میگفت مراد از یعنی موافقت با رسول الله مراد از اتباع سبیل مونیم ادول همیسته اگر چپ که میکردید قبول نمی کردید اما اگر اینجور معنا میشد قبول خیلی عجیبی نه واقعا یکی از انواع الهییت های بزرگ الهی که این شخص و که خودش شافعی است و میگه امام ما هم به همین آیه توسل کرده برای خود چه چه خودش به ذهنش رسیده که این معنا نداره پس اصولاً تا اینجا این صح... البته ابن هم در ما... در الاحکام همین رو گفت میگه روشن هستم واضحه که از این نیست ربطی به اجمال نداره از آیه و عرض کردم یکی این که واو رو واو بگیریم طبق این تصویر یکی اون جوابی که سید مرتضی که کمی توضیح داره البته ذکر کردم در کتاب المحصول سه چهار صفحه خود فخرازی صحبت کرده خیلی طولانی هم صحبت کرده هی انقیل قیل و برده برزه خیلی مثلا مراد از مؤمنین شامل عوام میشه نمیشه اجماعه شده شاملای مشکلی که این مؤمنین شامل عوام میشه شامل بچه هم میشه شامل بی سوادان میشه این وقتی هم به اجماع نداره. هی hey, اشکالات متعدد راه‌های متعدد و به ذهن من الان یعنی یک اشکال ایشان اشکالم اون اشکالم سرونه به ذهن من اصلا این میاد که اینجا واو اصلا جرب نباشه وا و اعص تصویر باشه مثل تفسیر بدل و اعص بیان باشه یعنی این شو خدابنده متعال میفرمه من یو شادم رسول کسی که با رسول الله مخالفت میکنه مخالفتش چجوریه به اتباق از راه مؤمنین خود ایجاد میکنه که نما هر که صابرن هستم رسول الله یک نهر وجود اجمالی امته، امتم یک نهر وجود تفصیلی رسول الله هست. مثل یک نقطه مرکزه که شما با چند می می‌نویسید. اون سرها وجود تفصیلی و نقطه مبارک شدن. نقطه مرکزه وجود اجمالی. من به نظر مراد آیه مبارکه اینا هم نیست که این گفته. مثلا مراد آیه اینه کسی که با رسول الله مخالفت بکنه از جامعه اسلامی هم خارجه. کسی که از جامعه اسلام مخالفت بکنه با رسول الله خارجه. این دوتا تا منعکس کننده همان و لذایع تبع غیر سبیل المؤمنین به غیر ایمان این چه شخصی اصلا از سبیل مؤمن خارجه من اونی که میفهمم به ذهن میاد آیه اونر که بیان باشه دل کل از این مطلبی که اینا گفتن اجنبی الان من متن عباراتو خوندم که روشن بشه که چه مقدار ادله‌ای رو که اقامه کردند دو و هر اصل گیرست دو بر اساس او سر صدا درست کردند حرف است یعنی از اف از اینکه خود شافعی تمسک کرده خود این شخص که شافعی مسلکه حرف امامش رو قبول نداره میگه این دلالت برای مطلب نداره المسلک الثانی این مسلک دوم رو خود ایشون قبول داره خود غزالی و هوا تمسک به قول صلی الله علیه و آله و سلم لا تحشم و امتی علاقه البته این حدیث مواره که علا خفه هم داره علا خفه هم داره علا ولالتر هم داره و بحث بین اهل سنت شده حتی ایشون از تشاره نکرده حتی عدهشون بحث کردن راجع به لفظش لا تشتمع بخونیم بسیغه نه یا لا تشتمعو بخونیم عرض مشکورشون بسیغه نه بخوندن لا تشتمعو بعضی هم احتمال دن چون نسخه نمیتونیم لا بزین ش یعنی امت من راه خطا نرم مراد اینه نهیه لا تشتم امتی علا خطا لا تشتم امتی علی بلاله یعنی پیغمبر به امت میخواد اعلام بکنه مواظب باشین راه خطا نرید راه گمراهی نرید فهمیدید این صیغه نه میشه ایشون در اینجا داره بعد ایشون که من ل من حيث اقوا و عدل علی المقصود ولیکن لیسه بالمتواتر بلکه این زعیفه ده این که به بالمتواتر کل کتاب بلکه کتاب متواترون لیکن لیسه به نست بعد پس چی این حدیث هم از سکت حالا باز مشکلی که آیان دارن متفقان علیه که حدیث بله هستندی ضعیفه بعد ایشون میگه فطر... فطریق و تقدیر دلیل ادن تظاهرات تظاهرت روایتا عن رسول الله به الفاظ مختلفه مع اتفاق المعنا اسمت اسمتهاد امه ال... ام من الخطاب و شهر علالسان المرموقین مرموقین شخصیت های بزرگ بزرد و ثقات من اصحابه که عمر و ابن مسعود و عبی سعید الخدری و عناس ابن مالک و عبدالله ابن عمر و عبو حریره و حضیفت ابن الیمان و غیر دیگه ما این راه بارد بشیم بگیم مجموعه ی که من منیتول و ذکر و من نحر قولی لا تشتم حالا روایات رو ایشون آورده یعنی ایشون چی مخواد بگیم ایشون بگی روایات با این که اکثر از همهشون نه اکثرشون سنده زعیفه ازشون سند در ازشون در رسته بخاری وقت ایشون آمده از مجموعه ی روا سنگینی رو بعدها ایجاد کرده یک آیا به این روایت درست دو لحظه روایت چیه سه معنای روایت اصولا چیه حالا غیر از این جهات و استظهار به استظهار ما و یا وقولام استدلال ما به این روایت درست از کسانی که خیلی مناقشات زیاد اینجا چه کده با فخرازی و سعی کرده بگه که این روایات رو متعدده تواصل اجمالی یا تواصل معنوی داره تا اگر تاثر اجمالی یا معنوی شد باز به قد مسعقد انعکاس کرد یه های لطیفی رو داره ایشون اینجا نداره اما فخرازی داره حالا نمی‌گه نمی‌گه خودش توضیح نمیده فخر هر دو رو احتمال میده توضیح نمیده حالا روایات بند بن میخونن که من باز نگین مثلا مثل آیات که نگن کم करिए و همه رو بخونید لا و امتی علی الضلاله ولم يكن الله ليجمع امتی علی الضلاله و سان الله تعالی ان لا یجمع امتی علی الولال فارفانی ها من سره ان یسکن بهبوۃ الجنه بهبوۃ در عربی یعنی وسط جنون اسم اعلی سید خلیان جماعت از جماعت و از جامعه اسلامی خارج نشه فام دعوت مویته تون تو هیچو من وراه دعوتهم یعنی اگر جامعه است بر کسی نفرین بکنن میگیره یعنی دعوت اونها و نفرین اونها همه رو شامل میشه و اینش شیطان مال واحد و هم من, من الاسلینه ارعبان الله مال جماعه لا یبال الله به شدوز من شد ولا تزال طائفتون من امتی على حق ظاهرین لا یغرهم من خالفه این یا تو مسلم یا تو بخاری سیدن و روی لا یزبر هم خلاف من خالف هم الا ما اصاب هم من لعوا لعوا یعنی مشکله لاما همزه و بعدش هم علیق بازم همزه لعوا. و من خرق جنر جماع اوفار غل جماع قید شبرین شبر در وقت عرق فاصلهی موبین انگشت اول و آخر یعنی انگشت شز و انگشت آخر رو شبر میگه حاصله بین انگشت اول و دوم رو هم فطر میگن با فا و تق قید شغرم فقط خلق رب غرف که در گردن حیوان می نزن برای مثل سالها برای شوخ داره چیزا فقط خلق رب قتل اسلام من اونقه و من فارغ الجماعه و ما او جاهدیه خب این کل روایاتی که هر شار دوباره بیره که این کل روایات بود حالا یک آخری پیدا بشه از نظر این چرaptی با اجماع فقاد تو فرد داره، است. این چرAPTی ما بیاد تو مواردی. نه اجماع، نه تواتر اجمالی نه تواتر معنوی اصلا کدی این چرAPTی داری؟ یک مسئله فرهی، جدید پیدا شده در کتاب است. یا در کتاب ما هست؟ متأزن کن سال آب در رسولان. اینا این، اصلا این چرAPTی داری؟ اینا اصلا که، اصلا این رواج، این روایات. خودم یکیش دلالت بر برای این مطلب محلت محل کلان در اصول میکنه. کلمه اومرها اشکغال اشکال خودش هم گفتن شامل مجانین میشه شامل بچند میشه شامل پیرزن میشه، شامل بی سوادان میشه شامل همه میشه دیگه؟ این لا تتم اومدی چرا یه بهار فوق ها دارد؟ همون شبیه که امروز گفتیم مثل نسبت بین و ماسه دروازه. آ چرا که این روات؟ اوا اون رواز ت که غل از صند جاز که بهدی خوده؟ الب واقعا نظر اصلا لایزال طائفتون من امتی ظاهری علی الحق مخصوصا مثل ایشون که به شدت با شیعه و با امامیه و حتی با امامی مخالفت ایشون از عجایب کار ایشون چون من الان اسم بردم در این کتاب بله یک مناسبتی فلدیگه که شیعه رو که میگه اصلا باطله کسی که بگه پیغمبر واسطه تعیین کرده باطل قطعا باطله حالا بله در این سفیل سفیل بایدیشون بخورم شون واقعا فرد عجیبیست این شخص ما رویان علی رضی الله عنه نوال اجتمع رأی و رأی و عمر بله من ای بیت بی امهات ال و الان او را بی فقال عبیدت و عبیده رو به اینجا به اصلاح مسغر نیست عبیدت سلمانی رأی و که فل جماعه احب و علینا من رأی و که فل, فل فرغه قلنا لو صح اجماع الصحابه قاطعا لما كان هذا يدل من مذهب عليا ان على اشتراط انقراض الاعصاب و بحث انقراض اعصاب و لو ذهب الى هذا اگر طرز كريم امير المؤمنين قاله به انقراض لم يجب تقليده تقليد ما ملزم نیستیم به قبول حرف و کیذ ولم يشتم الا راي و راي عمر اصلا اجماعی نبوده و اما قول و عبید که فی ما اراده این موافقت الجماعه اجماعا مرادش اجتماع نبوده و انما اراده بیم انه رعی که فی زمان الالفه در زمانی که مثلا خلافای اول دوم بودن و اتفاق و طائل الامام احب و الینا من رعی که فی این زمان خودشون فتنه مراد زمان امیر و الفرغه و تفرق کلمه زمانی که کلمه متفرم بشه و تطرق توحمت اله علیه یعنی توحمت و همه زمانی که خود علی نبی ساله متهمه و تطرق توحمت اله علیه فل براعت من الشیخین چون علی متهمه که از شیخین این داشته این از افادات این حجه سال اسلام در از این صفحه صد پنج همین کتاب اینجا یا حاله بعد ایشون میگه که بعد از این منگاه ها دهل اخبار لم تزل ظاهرتن فی صحابه و تابعین الى زمان نهاده لم یدفعها احدون من اهل نقل من سلف الامه و خلفها بلیه مقبولتون من موافق الامه و مخالفی ها مخصوصا این که لا تزال طائفتون من الامه ظاهرین الهم اینا اصرار دن این طائفتون من الامه شامل لاعل شیعه نمیشه قدومتی و لم تزل الامه یا تحتج محتج جنبه اصول دین بله و فروت فما وجه پل و دعوت تواتر فی آهاد حادل فما وجه حجه و دعوت تواتر غیر ممکنه و نقل آیا آهاد لایو فی دول علم بعد یه قلنا فی وجه حجه طریقا یکی نزده ال علم زروری. از ضروری از انظام شعن حادل امه و اخبران خب این شعن امت و این که مجموعاً در هر زمانی در امت قطعاً یکی هست که مطابقه با حقه این چه رفتی به اجماع افقاها دارست من تحجیب می این راه دوم و سومی که بله راه مثلا وجه دوم ان المحتجین بها اخبار اصبت و بها اصلاً مختوان به خیلی عجیبه یه دلیل رو که قطعی ثابت کرن و خبه اجماع الذيیفت کمبی ال کتابه لا حالا و على س در متوااطه رو با این رووارد سامی اجماعی که بر کتاب و سنت متواطه مقدمه خب روایات داره میگه پیغمبر میگه لا تتماع ال زلاله اون زلاله و خطایی است که خود پیغمبر بیان کرده میگه نه خلاف پیغمبر نیست. این روایات دلالت می‌کنه که امت اگر آمد دقیقاً خلاف پیغنبریی استاد اشکال نظر قبول می‌کنه. و هول اجماع الی کهن به علا کتاب الله تعالی علا و علی سنت متواتره و یستحیل فل عادت تسلیم به خبر یرفع به الكتاب المقطعه نمیشه حتما فقها از این روایات اینو فهمیدن الا نمی‌شه یعنی علما از این روایات تهمیلی اجماع به ما و اجماع حجیثه که بیتونین کتاب و سنت متواطر رو بردارن بعد دیگه وارد بحثای دیگه میشه که انصافن حد شدن فکر میکنن اگر تو از کن هم ابنه هست میگه ما تمام این روایت قبول عرضه خیلی زیب و سنده میگه برپرزم قبول بکن توی امت توی مجموع امت ایک فردیست که حق قولش مطابق با واقع این چه رفتی به اجماع مصطل توی اممت ممکن است یه بقال باشه ممکن یه قصار باشه ممکن فرد فضا... نداره توش که علم و نداره که تایفه اهل که نداره یه تایف معین که نداره توصیفی که نگفته اون تایفه که اوزایی دارن بعد المقام و ثانی بله بعد ایشون شروع میکنه که به اصطلاح اشکالاتی که به اینجا کردن، بعد مخالفین تمق به آاط رو ما اینارین بخوریم از تممسک و, و خالتما چون وقتتم تمام شد یه خیلی و پرسپلاس از تممسک رو به طریق معنوی و بیان و از صحاب ال قبل و قبلیته و ز و نه هم قاط اوننهبه ها ببینید عمدهش میگ تو این مسئله انصابش قبول کنیم بازگشتش به زمان و صحبه بوده و انشاالله می کنیمیم بازگشتن در حقیقت به همان آمر بود. اصل قسه اون اصلا حتی ادعایشون در این که میگن عمر با این صراحت گفت متعه چون کانته الله عزوجل و ما ما میگن چون صحابه سکوت کردن اجوان صحابه حجته این درست همین حرفی که اینجا داره میگه میگه اگه صحابه اجوان کردن حکم کتاب و سنت رو برمی‌دادیم البته این من دو توضیح بدم عمر دو تا متعه رو گفت یکی متعه الحج متعه نسا در متعه نسا با عمر موافقت کردن در متعه الحج موافقت نکردن خیلی شاید مثلا در مجموع علماشون یکی یا دو تا خواهل فرمت به حرف قومت دیگه قبول نکرد چون قطعاً الان متعطل حج دارن حجت هم از تو دارن قبول قطعید خب هم روی از اونها باید بخورتی <تصفح> این او سفم از فم از سمت سمت هم بیونه لحجه چون آیه متعطل حج در قرآن آمده احتمالا از این جد به هر حال یکی از عجایب کارشون همینه. بله یک سره باشه. و از اون یکم از باشه. با اون هر بود که زئهان در نمیاد. اما تو احرام بونه تا حج بره. کردی؟ قرارداد چیز ماکان از عجایب کار هم همینه که در اون کلمه نسبش قبول کردن، نسبش هم قبول نکردن. متعهد حج رو از کن به من نگاه میکنم یک نفر و دو نفر نوشتن که با عمر موافقت کردن هیچ کس با عمر موافقت نکرد یعنی قطعا بعد اجماع به خلاف عمر قطعا همین یعنی من که احتماله معذارف مثلا این حرف رو در اینجور انه صحابه اضاقه قبو و به قبولیت زعمه انه هم بها فلا بها فلایختعونه بها الا ان مستند قاطع و اضاکت کسر و کسرتن تل تل حد فل و و عليهم قتل آ و توحیل و علیه ملغلق. خب این برپذ رو صحابه شد صحابه به خاطر اینکه که نزدیک رسول الله بودن همه حرف ابنه هست کشف میکنه که رسول الله این کلام رسول الله برپذ مول صحابه این چرا توی فوقهای زمان ما داره این, این هم مسئله که سبابی که ایشون فهمدن که انشاءالله فکر میکنن تعجب این برای شما تعجب باشه که مثلا قوی ترین کتاب علمی ها ضعیفو بی پایه رو بذارید صلی الله علی محمد